قصد خرید خودرو دارید نمیدونید کدوم که از انواع خودروها مناسب حال شماست براتون مهمه که از یک جای مهم و معتبر و مورد اعتماد خودرو رو, رو تهیه کنید با ما همراه باشید با برنامه امروز راهنمای خرید سلام. در برنامه امروز راهنمای خرید میخوایم با هم اطلاعاتی مرور کنیم درباره نحوه خرید خودرو. در برنامه امروز ابتدا خودروها رو با هم دسته بندی میکنیم بحث میکنیم با هم که خدروه نو مناسب تر هست یا یک خدروه دست دوم آخرش به این جنبندی میرسیم که چقدر باید هزینه کنیم برای خرید یک خودرو و بعدم در آخر چند تا آدرس میدیم خدمتون برای خرید مطمئن خودرو. درست از لحظه ای که این فکر به ذهن شما خطور میکنه که یک خودرو بخرید باید به چند تا نکته توجه داشته دو باشید. اول از همه خیلی مهمه که هدف خودتون رو از خرید این خودرو تعیین کنید. آیا خودرو برای شما یک وسیله است برای تردد بین منزل و محل کار یا وسیله‌ای است که با اون قصد دارید به سفر برید و در جاده ازش استفاده کنید؟ کم مصرف بودن خودرو هم هم به اقتصادی و هم به لازم محیط زیستی خیلی مهم هست و اینکه شاید برای بعضیها مهم باشه که خودروشون ساخت کشور خودمون باشه و یا از نوع وارداتی و در نهایت هم نوع اتاق خودرو اینکه این اتاق چاردره دو دره به صورت کوبش شاسی بلنده و یا معمولی است هم برای بعضیها مهمه که باید بهش توجه کنن. در قدم دوم هم باید مشخص کنید چه محل و افرادی رو برای انتخاب خودرو و مشاوره در خصوص خودرو بهشون مراجعه کنید و یادمون نره شما دارید پول میدید برای خودرو حتما موقع خرید خودرو به این نکته توجه داشته باشید که از سرمایه خودتون محافظت کنید و برای این کار لازمه هست که با عجله تصمیم نگیرید و اما برای اینکه بررسی کنیم که اساساً خودروی صفر کیلومتر بهتری یا کار کرده کافی است که به چند تا از ویژگی های هر کدوم از این دو تا دسته خودرو با هم مراجعه کنیم خودروهای نو طبیعتاً همه چیز در این خودروها نو هست و یک احساس خیلی خوبی به ما میده گارانتی خودروهای نو حتما این امتیاز رو دارن که گارانتی دارن و وقتی که شما اونها رو خریداری میکنید خیالتون راحته که تا چند سال ماشین شما تحت ضمانت هست این امتیاز کمی نیست ولی برای خرید خودرو دست دوم باید به این نکات توجه داشته باشید اولا به لحاظ اقتصادی چون قیمت این خودروها کمتر از خودروهای صفر کیلومتر هست خب این یک ویژگی مثبت محسوب میشه و اینکه در آینده هم افت کمتری در قیمت خودرو صورت میگیره باز همین یک نکته هایی اهمیت هست، ولی در موقع خرید خودروهای دست دوم باید به سلامت این خودروها توجه بیشتری داشت و فراموش نکنیم که ریسک سلامت این خودروها بالاتر هست. هرچند نرخ‌های بیمه برای خود روهای کار کرده به مراتب پایین‌تر از خودروهای نو هست. با توجه به همه اینهایی که عرض کردم خدمتون اگر تصمیم شما این هست که از یک خودروی 0 کیلومتر استفاده کنید و قصد خرید یک خودروی نو دارید قدم اول تعیین بودجه مالی متناسب با نوع خودرو و قیمت خودرو است نکته دوم که باید بهش توجه کنید پاسخ به این سوال است که اساساً با توجه به نیاز شما چه خودرویی برای شما مناسب هست بعد از اینکه خودرو رو انتخاب کردید و در قدم نهایی برید سراغ که اتومبیل خودتون رو از کجا خریداری کنید ولی اگر تصمیم گرفتید که از خودروی دست دوم استفاده کنید و قصد خرید خودروهای کارکرده رو داشته باشید اول چند تا توصیه فنی بهتون بکنم که بدنه ماشین رو بهش توجه کنید که دچار خوردگی و زنگ زدگی نشده باشه سیستم تعلیق و تایرها نکته است که باید بهش توجه داشت رادیاتور و سلامت اون و اینکه که هر حال نشتی آب نداشته باشه نکته است که باید بهش توجه کرد ترمز و سیستم انتقال قدرت خودرو و همینطور موتور خود رو روغن و اگزوز و نکاتی است که باید بهش توجه داشته باشیم و این نکته رو هم در ادامه بگم خدمتون که موقع خرید خودرو کارکرده حتما آماده باشید کسی که سری حرف بزنه باخته اینو معامله کردن و چونه زدن سر قیمت این خودروها خیلی مهمه انگیزه های فروشنده رو سعی کنید حدس بزنید چرا فروشنده قصد فروش خودرو خودش رو داره و نکته ای که خیلی مهم هست این است که در حین چونه زدن بر سر قیمت خودرو اطلاعات شخصیتون رو در اختیار فروشنده قرار ندید چند تا پیشنهادم بگم خدمتون که وقتی که یک ماشین کار کرده رو میخواید تست کنید حتما به صدای لنت های اون توجه کنید. آج های تایر ها رو میتونید با قرار دادن یک سکه بین اون آج ها در واقع آزمایش کنید و چک کنید روغنش رو هم میتونید از طریق گیج مخصوص خودش چک کنید و اینکه خیلی بهتر هست که از کمک کارشناس های خبرهی که در این حوزه قرار دارندن و وجود دارند استفاده کنید. و اما آخرش چند، اگر قصد دارید که برای خرید خودرو بین 15 تا 30 میلیون تومن هزینه کنید خب میتونید پرای تیبا و یا سمند رو خریداری کنید. اگر بین 30 تا 50 میلیون تومن قصد دارید هزینه کنید برای خرید خودرو، میتونید ام بی ام 530 یا ام بی ام 315 رانا 206 یا انواع تندر یا همون الناوت و همینطور لیفان 620 رو خریداری کنید. بلی اگر قصد دارید بین 50 میلیون تا 70 میلیون تومان برای خرید خود خودرو هزینه کنید میتونید در واقع لیفان x 6 یا MVM x تهیه کنید اگر بین 70 تا 90 میلیون تومان قصد هزینه دارید میتونید مگان حالا 2006 اون و 2001 اون رو تهیه کنید و از 90 میلیون به بالا هم که بین 90 تا 110 میلیون میتونید مزدا خریداری کنید و از این قیمت به بالاتر دیگه شامل خودروهای خارج شد که لیستشون هم بلند بالاست. و اما برای خرید خودرو هم مطابق رویه بقیه برنامه هامون ما در آخر چند آدرس خدمت شما عرض میکنیم که میتونید برای خرید خودرو به اونجا مراجعه کنید. اگر قصد خرید خودرو خارجی دارید میتونید به خیابان متحری و اگر قصد خرید خودروهای داخلی رو دارید میتونید به یابانه بانه هفته شهری و مراجعه کنید آرزوی ما اینه که خوب هم